مصنوی معنوی مولوی برنامه ه پم عزم کردن آن وکیل از عشق که رجو کند به بخارا لا ابالیوار شمع مریم را بهل افروخته که بخارا می رود آن سوخته سخت بی صبر و در آتشدان تیز رو سوی صدر جهان می کن گریز این بخارا منبع دانش بود پس بخارایی است هر کانش بود پیش شیخ در بخارا اندری تا بخاری در بخارا ننگری جز بخاری در بخارای دلش راه ندهد جز مد مشکلش ای خنک آن را که زلت نفسهو، و آن کس را که یردی رفسهو. فرقت صدر جهان در جان او پارپاره کرده بود، ارکان او. گفت، برخیزم همان جا واروم، کافر ارگشتم دگر ره بگروم. وارا آنجا بیافتم پیش او پیش آن صدر نکو اندیش او گویم افغاندم به پیشد جان خیش زنده کن یا سر ببر ما را چمیش کشته و مرده به پیشت ای قمر به که شاه زندگان جای دگر. آزمودم من هزاران بار بیش بیتو تو شیرین می نبینم عیش خیش غنیلی یا منیتی لحن النشور ابروکی یا ناقتی تم تمسرور ابلعی یا ارض و دمعی قد کفا اشربی یا نفسو وردن قد صفا ادتا یا ایدی ایلینا مرحبا نعمه ما روحتو یا ریح السبا گفت ای یاران روان گشتم ودا سوی آن صدر کمیر است و متا دم بدم در سوز بریان می شوم هرچه بادا باد آنجا می روم. گرچه دل چون سنگ خارا می کند، جان من ازم بخارا می کند، مسکن یار است و شهر شاه من، پیش عاشق این بود حب الوطن، پرسیدن معشوق از عاشق غریب خود که از شهرها کدام شهر را خوشتر یافتی گفت معشوق به عاشق کیفتا تو با غربت دیدی بس شهرها پس کدامین شهر از آنها خوشتر است گفت آن شهر که در وی دلبر است هر کجا باشد شه ما را بسات هست صحرا گر بود خیات هر کجا که یوسف باشد چماه، جنت است ارچه که باشد قهر چا من کردن دوستان او را از رجوع کردن به بخارا و تهدید کردن و لاعبالی گفتن او گفت او را ناسه عیب خبر عاقبت اندیشگر داری هنر در نگر پس را به عقل و پیش را همچو پروانه مسوزان خیش را چون بخار می روی دیوانه لایق زنجیر و زندان خانه ای اوز تو آهن همه خایت ز خشم او همه جوید تو را با بیست چشم میکند او تیز از بحر تو کارد او سگ قهت است و تو, تو انبان آرد چون رهیدی و خدایت راه داد سوی زندان میروی چونت فتاد بر تو گر ده گون موکل آمدی؟ عقل باییستی که از کم زدی چون موکل نیست بر تو هیچ کس از چه بسته گشت بر تو پیش و پس عشق پنهان کرده بود و را اسیر آن موکل را نمی دید آن نظیر هر موکل را موکل مختفی است ور او در بند سگ تبعیز چیست خشم شاه عشق بر جانش نشست بر اوانی و سیه بست می او را که هین او را بزن زان اوانان نهان افغان من هر که بینی در زیانی می رود گرچه تنها با عوان می رود گر از او واقف بودی افغان زدی پیش آن سلطان سلطانان شدی ریختی بر سر پیش شاه خاک تا امان دیدی ز دیو سهمناک میر دیدی خیش را ای کم زمور زان ندیدی آن موکل را دکور. غره گشتی زین دروغین پر, رو بال پر رو کو و بال، پر و بالی کو کشد سوی وبال پر سبک دارد ره بالا کند. چون گلالو شد گرانی ها کند. لاعبالی گفتن عاشق ناسه و آزل را از عشق گفت ای ناسه، خموش کن، چند چند پند کمده، زن که بس سخت است، بند سختتر شد بند من از پند تو عشق را نشناخت دانشمند تو آن طرف که عشق می افزود درد بو هنیفه و فاو شفاعی درس نکرد تو مکن تهدید از کشتن که من تشنه زارم به خون خیشتن عاشقان را هر زمان مردن است مردن عشاق خود یک نوع نیست او دو صد جان دارد از جان حدا. و وان دو صد را می کند هر دم فدا هر یکی جان را ستاند ده بها از نبی خن اشرتن امسالها گر بریزد خون من آن دوست رو پای کوبان جان برفشانم برو آزمودم مرگ من در زندگی است چون رحم زین زندگی پایندگی است اقتلونی اقتلونی یا سقات این فی قتلي حياتا فی حیات یا منیر الخد یا روح البقا اجتذب روحی بجد لی باللقا لی حبيب حبه یشو الحشا لویشا یمشی علا عینی مشا پارسی گو گرچه تازی خوشدر است عشق را خود صد زبان دیگر است بوی آن دلبر چپران می شود آن زبان ها جمله حیران می شود بس کنم دل بردر در خطاب گوشاو و الله عالم به ثواب چون که توبه کرد اکنون بترس ترس کوچ و ایاران کند بردار درس گرچه این عاشق بخارا می رود نه به درس و نه به استا می رود. آشقان را شد مدرس حسن دوست دفتر و درس و سبقشان روی اوست خاموشند و نعره تکرارشان می رود. تا عرش و تخت یارشان درسشان آشوب و چرخ و زلزله نه از یادات است و باب و سلسله سلسله این قوم جده مشکبار مسئله دور است لیکن دور یار مسئله کیس اربپرسد پرسد کستورا گونه گنجد گنج حق در کیسه ها گردم خلع و مبارا می رود بد مبین ذکر بخارا می رود ذکر هر چیز دهت خاصیت زن دارد هر صفت ماهیت در بخارا در هنرها بالغی چون بخاری رونهی زن زان فارغی آن بخاری قصه دانش نداشت چشم بر خورشید بینش می گماشت هر که در خلوت به بینش یافت راه اوز دانش ها نجوید دستگاه با جمال جان چو شد همکاسه باشدش زخبار و دانش تاسه دید بر دانش بود غالب فرا زان همه دنیا به چربد آمرا زن که دنیا را همه بینند عین و جهان را همه دانند دین رونه نهادن آن بنده عاشق سوی بخارا رونه هادان آشق خونابریز دلتپان سوی بخارا گرم و تیز ریگ آمون پیش او همچون حریر آب جیهون پیش او چون آب گیر آن بیابان پیش او چون گلستان میفتاد از خنده او چون گل ستان در سمرقند است قندم ما لبش از بخارا یافت وان شد مذهبش ای بخارا عقل افزا بوده لیکن از من عقل و دین بر بوده ای بعدر می جویم ازانم چون هلال سدر می جویم در این صف نعال چون سواد آن بخارا را بدید در سواد غم بیازی شد پدید ساعتی افتاد بیهوش و دراز عقل او پرید پر در بستان راز بر سر و رویش گلابی می زدند از گلاب عشق او غافل بودند او گلستان نهانی دیده بود غارت عشقش ز خود ببریده بود تو سرده در خور این دم نی با شکر مقرون نی گرچه نی رخت عقلت با تو از تو که از جنودن لم تراوها غافلی. در آمدن آن آشق لاوبالی در بخارا و تحضیر کردن دوستان او را از پیدا شدند. اندر آمد در بخارا شادمان، پیش معشوق خدا دارالامان همچو آن مسته که پرد بر اسیر، مه کنارش گیرد و گوید که گیر. هر که دیدش در بخارا گفت خیز، پیش از پیدا شدن منشین گریز. که تو را می جویدان شه خشم تا کشد از جان تو ده ساله کین الله الله در میا در خون خیش تک کم کن بر دم و افسون خیش شهنه صدر جهان بودی و راد معتمد بودی مهندس استاد قدر کردی و از جذاب بگریختی رسته بودی باز چون آویختی از بلا بگریختی با هیال ابلهی آوردت اینجا یا عجل ای که عقلت بر اتارد دق کند اقل و عاقل را قضا احمق کند نه سخرگوشه که باشد شیر جو زیرکی و اقل و چالاکیت کو هست ست چندین فسونهای قضا گفت ازا جا القضا زاق الفضا صدره و مخلص بود از چپ و راست، از قضا بسته شود کان اجده هاست. جواب گفتن عاشق آزلان را و تهدید کنندگان را. گفت من مستسقیم آبم کشد گرچه میدانم که هم آبم کشد هیچ مستسقی به نگریزد ز آب گر دو صد بارش کند ما تو خراب گر بیا ما صد مرا دست و شکم عشق آب از من نخواهد گشت کم گویمانگه گه که بپرسند از بتون کاش که بهرم روان بودی درون خی که اشکم گو بدر از موج آب گر بمیرم هست مرگم مستطاب من به هر جایی که بینم آب جو رشک آید بودم ای من جای او دست چون دف و شکم همچون دهل تبل عشق آب می کوبم چو گل گر بریزد خونمان روح الامین جرع جرع خون خورم همچون زمین چون زمین و چون جنین خونخارم، تا که عاشق گشتم این کارم. شب همه جوشم در آتش همچو دیگ، روز تا شب خونخورم مانند ریگ. من به شیمامم که مکرن گیختم، از مراد خشم او بگریختم. گو بران بر جان مستم خشم خیش اید قربان اوست و آشق گاو میش گاو اگر خسپد و اگر چیزی خورد بهر اید و زبح او میپرورد گاو موسادان مرا جان داده ای. جزو جزو هم حشر هر آزاده. گاو موسا بود قربان گشته کمترین جزوش حیات کشته برجهیدان کشته زاسیبش زجا در خطاب عذر بوه و بعضها یا کرامی عزبه و حاز البقر ان اردتم حشر ارواه نظر از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم به حیوان برزدم مردم از حیوانی و آدم شدم پس چه ترسم کیز مردن کم شدم حمله دیگر بمیرم از بشر تا برارم از ملائک بال و پر و از ملک هم بایدم جستن ز جو کلو شیع حال کله وجههو بار دیگر از ملک قربان شوم آنچه اندر وهم ناید آن شوم پس ادم گردم ادم چون ارغنون گویدم که نا الیه راجعون مرگ دان آن که اتفاق امت است به حیوان نهان در ظلمت است همچون ایلوفر بروزین بروز این طرف جو همچون مستسقی حریس و مرگ جو مرگ او آب است و او جویای آب می خورد و الله و عالم به ثواب عیف سرده عاشق ننگین نمد کو ز بیم جان ز جانان می رمد. سوی تیغ عشقشی ننگ زنان صد هزاران جان نگر دستک زنان جوی دیدی کوزن در جوی ریز آب را از جوی کی باشد گریز آب کوزه چون در آب جو شود محو گردد در وی جو او شود وصف او فانی شد و ذاتش بقا زین سپس نه کم شود نه بد لقا خیش را بر نخل او آویختم، عذر آن را که از او بگریختم. رسیدن آن عاشق به معشوق خیش چون دست از جان خود بشست، همچو گوی بر رو و سر جانب آن صدر شد با چشم تر جمله خلقان منتظر سر در هوا کش سوزد یا براویزد برا این زمان این احمق یک لخت را آن نماید که زمان بدبخت را همچو پروانه شرر را نور دید احمقانه در فتاد از جان برید لیک شمع عشق چون آن شمع نیست روشن اندر روشن اندر روشنیست او با عکس شام های آتشی است می نماید آتش و جمله خوشی است. نامه های مصنوی معنوی مولوی را، مینوکتاش و شهباز باز ایرج دهیه و اجرا کردن،